پنجم کار فوری رو از کار مهم تفکیک کنید همه ی کارهایی که باید تهی روز انجام بدید میتونید به چهار دسته تقسیم کنید این دسته بندی بر اساس مشخص کردن فوری بودن یا نبودن و مهم بودن یا نبودن کار انجام میگیره اولین نوع کار هم فوریه و هم مهم این چیزیه که مجبورید فوراً انجام بدید این کاریه که جلوتون ایستاده. کارهای مهم و فوری مثل تلفن‌های مهم، جلسه ها، تماسهای مشتریان و کارهای استراری تقریبا همیشه توسط دیگران پیش میان. آنها نیازهای حیاتی شغلتون هستند. اگه از زیرشون در برید، مشکلات مهمی پیش میاد. بیشتر افراد همه روز رو مشغول انجام کارهای هستند که هم مهم و هم فوری هستند. دومین دسته ی کارها اونهای هستند که مهمند اما فوری نیستند. اینا مواردی هستند که معمولاً بزرگترین نتایج دراز مدت ممکن رو دارند. اینا مواردی هستند مثل تجدید قوا، بالا بردن دانش و مهارت، ورزش و سلامتی جسمی و وقت گذاشتن برای خانواده مورد مهم اما غیر فوری موردیه که میتونه به بعد موکول بشه ولی در عین حال از اون مواردیه که میتونید بزرگترین نتایج دراز مدت ممکن رو در زندگیتون داشته باشه کارها و فعالیتهایی که فوری نیستند اما مهمند دیر یا زود واقعا فوری میشن مثل پروژه های پایان ترم در دانشگاه یا گزارشی که باید برای رئیس یا یکی از مشتریاتون آماده کنید سومین دسته کارها اونایی هستند که فوری ولی غیر مهم هستند اینا میتونن شامل تماسهای تلفنی همکارهایی که سر به سراغتون میان صحبتهای معمولی درباره های تلویزیون و اینطور موارد باشه میتونید سر کار به اینطور چیزها برخورد کنید ولی هیچ تأثیری روی موفقیتتون نداره خیلی افراد خودشون رو با این خیال فریب میدن که واقعا دارن کار میکنن در حالی که مشغول کارهای فوری اما غیر مهم هستن و هر حال این یک وقت تلف کردن بزرگ و یک نابود کننده واقعی جایگاه شغلی و قابلیتهای آینده است بزرگترین وقت تلف کردنها فعالیت‌هایی هستند که من و ن اینا فعالیت‌های کاملاً بیهودن. اینها کارهای بی و کاملاً بیهوده‌ای هستند که طی روز انجام میدید و هیچ نتیجه‌ای دربر ندارن. مثل خوندن روزنامه، زنگ زدن به خونه که بپرسید شام امشب چیه یا خرید رفتن. این کارها هیچ کمکی به شرکتتون یا به هدفهای شخصیتون نمی‌کنه. کلید دو برابر کردن کاراییتون اینه که زمان بیشتری رو صرف کارهای مهم و فوری بکنید. و بعد به فعالیت هایی بپردازید که مهم هستند ولی در حال حاضر فوریت ندارند شما کاراییتون رو با خودداری از انجام کارهای غیر مهم افزایش میدید زیرا انجام دادن یا ندادن اونها هیچ اهمیتی نداره همیشه از خودتون بپرسید نتایج بالقوه دراز مدت انجام این کار چیه؟ اگه اصلا این کار رو نکنم چه اتفاقی میفته؟ جوابتون هرچه که بود بگذارید در انتخاب راهنماییتون بکنه.